ریش تا کنده باشد و ریش حرام است یا نه؟ ریش تراشیدن مخصوصاً نه بدون حرام است؟ حرام است و حرمتش هم شدید است. در چهار مذهب در چهار مذهب حرام است. در هیچ مذهبی ریش حلال نیست. این که میگن در مذهب امام شافعی گفتن سنت است اما سنت به ایمانا نیست یعنی جایز چیزی که امام شافی میگه سنت یعنی واجب در کتاب شرح محذب که امام نوی به کتاب المجموع کتاب المجموع هست شرحش محذب هست که امام نوی رحمه الله نوشته در همین کتاب در بحث سنت میگوید که آن چیزی که ما میگیم سنت یعنی واجبه واجب هست تا به اتفاق چهار مذهب ریشت نگاه داشتان واجبه چقدر باشه؟ یک مشت باشه از کجا باشه؟ این فکر پایین؟ این فکر پایین میگن لحیه. این لحیه هست. بالای فکر بالا این لحیه نیست. اینجا دیگه این میتونه بر بربدارید. لحیه این فکر پایین رو میگن. و این زنگ گردن هم نیست. فک هست. اینها رو زیر گردن میشه برداشت و روی گونه ها رو میشه برداشت. اما خود فک جزریش با اینها رو نگه داشت. ایش داشتن دیگه اینجا تو واجبه چون که امر آ و سیقه عمر همیشه برای وجوب هستید همیشه وجوب مگر اینکه دلائلی برای غیر از وجوب باشند. و هدیثی دیگر هم قبلها قونده همیشه میگویلو در کتاب سیرت الحلویه کتابی هست اونجا وقتی که فرستابگان کسرا نامی نوج برای حاکم بحرین چون حاکم بحرین زیر خود محافظ امور کسرا در منطقه عرب حاکم بحرین بود نامی نویش که برو دو نفر بفرست در مدینه این شخصی که داره رو دعوت به طرف اسلام میده اونو بگید بیاری شما این ها رافت مدینه ریشوها تراشیده بودن ریشوها تراشیده بودن وقت تراشیده بودن نبی مکرم اسلام این ها رو روخ برگردان اوه اوه چه اینجوری هستی شما این چه شکلی شما درست کردی گفت که خدای ما اینجوری هست خدای ما مرد استوری کسرا نبی مکرم اسلام فرمودند الله علیه و سلم خدای من میگه اینجوری نشون نگاه به خدا همه اینجوری گفته اینها اولین نفری که نبی که رخ برگرداند از هیچ شخص نبی کری این کار نکرده مشکین می یهود و نصارا می آمدن دشمنان سرسخت اسلام می آمدن صحبت می کرد اما اینها که که وقتی که نبی مکرده اسلام چهره جهان آرارو از اونها برگشت حالا اینش بسیار و اینش شدیدی بود برای اونها این سخته. قبا این است که اینو هم بدونید انسان در چه شکلی از دنیا بره با همون شکل از قبر بیدار میشه با چه عملی از دنیا بره با همون عمل از قبر بیدار میشه این حدی داخل صحیح بخاری اومده حالا اعمال ظاهری باشه یا اعمال باطنی حالا خدا نقاست با این روش راشد اهل قبر برین با همون شکل از قبر بیدار میشید وقتی بیدار شدید حالا کجا بیجرو جلو کریم حاضر بشه برای آب خوردن. آواز قوصل از اونجا در دنیا از کافر نبی مکرم اسلام کهر وارک را برطافتن اونجا چی کار میکنن؟ چی میخواه آب بخوری از دستای وارک نبی کری؟ جایی هست اونجا ساری می آید این کار رو نکنید از همین حالا توبه بکنید و این شهار رو انشاءالله از همین حالا دست نزنید تا برم بزرگ میشم سنت رو نگه دارید که حالا در سنت ها نور هست، هدایت هست